از این که همه از سکی که آن اخباری ها به مجموعه آیات به در, در, در محضویت زواهر این صاحبا قابل تصدیح نیست و تا آنیست اما آنیه متشابه از صورت اولا زواهر ظاهر آنیه این که متشابه من مجمن نیست که همی سوگی روز خوزی کرد اگر من مجمن هم باشه اگر کلام شما پیدا کردی یا یه بحث تمثل ظاهر نیست و سادسا اینا مختصر بحثای دیروز ارسو بید که داخل آیه مبارکه مشکل در آیات محشابه تبدیله و بحث ما در وجه ظهور کلام بحث تبدیل میتنسن من و ام مندد اینه که و یعنیت فتنه و این چیز تعریف نیست اصولاً در اول بحث ظواهر کردیم ظاهران ما در مارکس با اون می‌باید کاملا واضح را روشن باشه نمیشه در مسائل آنی که بحث اوجت مفره و نواظن و توابعی داره ما به تعبیر کلام اعتماد کنیم با لغز کاملا ظاهر باشه چون باشه واجب باشه تا و با او تماشق بشه این راجبه آیات محکم و متشابه اما راجبه مسئله دیگری که در جماعت ها آیات روانیی که تفسیر در عین و معقاله در است برن. قرآن در عین اصل مرحوم استاد علامه مرادطری استحسان زمینی است این بدیه امور از روی استحسان اون استحسان subscript مسئله فکری به واقع میاد این منفسر قرآن در عین این ظاهرن این باشه هر کسی که خواهر قرآن رو برسم اون معلومات خودش به اون کشتغانه های علمی قرآن برسه این فریعته بر برمقه در یعنی مراده از تفسیر رسیدن به عمق معانی آیات و واقعیت ها و ارتباط هایی که وجود دارد در محن واقع برسم رسیدن به ای اینها با ادرافات ذکنی خودمون این با معلومات خود هر چوری یکی فلسفه فرچه خونده مختصر تفسیر داشته به معنی سری آیات قرآن رو چه همون تفکر فلسفی مشایع تفسیر دیگه اینکه ارقام مثلا مزدن... اینکه مثلا علوم جدید نگاه کرده آیات و رو چه بر همون علوم جدید اثر از جا واقع شده باشه مثلا تابیکی چون بگید اگر حیوانات و قرمانه و این علوم جدیدی که با رو با او تفسیر کرده در این مقام در روز منی سال, سال یه مدتی بحث سر بوده بود این این که این تفسیر خواهده استمال هست که من نموان روزی بالا که رسو بر کسی مثلا فرسونی یه برداشت های اجتماعی حتی نستجی رو کسی بود حتی رو تو که مثلا قرآن رو میشه روش به ما هستند خب ایداری قرآن اسم قرآن از این مراده از تفسیر یعنی رسیدن به خواهر که در قرآن هست در همیه مشکاش لیکن تصوراتی که خودمون داریم طب که خودمون رنگ اینجا اینه یک کسی بخواست به اون رعی و نظر و ادراکاتی که داره مرزار معلوماتی که داره اون کلام رو معنا بکنه از کل اختیار احساس به قرآن نظره قرآن من اینطوره یک کسی بخواست یک کتاب از اصلا تبیل رو یک کسی که درجه خاصیت تب بلده معنی بکنه یک کتاب فیزیک رو در یک درجه کتاب بسیار بالا خود طبعا به عمد کتاب نمیرسه یک کسی که ممکن از هر تنظر فکری با این شخص مخالف هم باشه با معنا بکنه طبعا معنه ایگر میاد. یعنی مطلبی که بخشه میشه کشتوانه های علمی و دیر علمی و دیر واقعی که داره ارتباطات واقعی که داره این رو همون رو اشتغال حل بکنن کسی نمیتونه بدون آشنایی و بدون اون که ارتباطات رو کاملا مسلط باشه حل بکنه. حدیث همین امام که معونه شعر و این دیو روایات و روايات جعلی به صورت در رسانه این است که انسان را اگر فردی به قرآن تنها راهی که برای شامل ورود به دره است به معنی و نداره چیزی از اهل معلی مصطفی روجه به و اون تفسیری قران جای تمثل به زواهر کتاب در احکان و قانونی و در این احکان و قانونی در اخلاقی ها ام نقاقی همارو کن احسان در معارف در تاریخ انبیا در مجموعه معارفی که در قرآن موجوده به شک رسیدن به باطن و واقع و کشت بانه ها و زیر بناهای اینویش مونه در که این مبتی به بحث زواهر و تمسک به ظاهر کتاب اون روز من مثال را ز کردم یه دکتر به شما بگه دو لیبان آب بخورید خوب معنای کلام واضح ی لیبان دو لیوان معناش وا آب خور اما این رو اگر فرض کند بهیک دکتر دیه متخسص دیگه اون بدن مثلا ن آای دکتر در نظر گرفته مثلا فصل گرما بوده یا سرها بوده میزان کفشی آب میزان اینکه بدن شما جوان باشین پیر باشین میزان این آب مثلا چه جور باشه طبیه محاسبات عرمی مثل شما در شبان روز، این نقضاق نیازه این مربوطه به تخصیره این تخصیر مذر نیست بزاره ده کنان اصلا این به نهره مثل مثل, مثل پوست پیاز و باقی یک نهره اش احتبا و اشتمالی سیاره سبتان به تحریر روزه که با امریه کاملا قابل جمع دو نقطه نیست آب و خود روی من آب و خود شما رو اون تفسیر علمی هم باآوردهش مخصوصه این ر به اون قسمت نداره این اینطور نیست که اخذ در ظواهر مثلا یک ر حقی باشه بشه تفسیر کلام ممکن است که کسی که یه درجه از طبخنده این کلام رو یه جور معنا کنه چیزی که بیشتر اطلاعات داره بیشتر رنجتر معنا کنه کسی که اطلاع بیشتری داره حتی ممکن است خیلی دقیق حساب بکنه مثلا میگه دو دیوانو اصلاً درسی اون دو نیوان مثلا 533 اون دو نیوان مثلا 1033 ممکنه این احتمالات پیش میاد اما اینان رفتی به حجیت زباده نداره بحث حجیت زباده بحث تفسیر نیست که حالا تفسیر به باشه در رقیه مراد استحسانات زنی نیست اون مقدار معلوماتی که شخص داره در هر جرد داره بخواد با معلومات خودش کلام دیگه رو به عمرش برسه تفصیل را اینه تفسیر در می که این کلام آب بخور این که خب زاده محفوظه به یک دهاتی شهری پیرزن پیره من بچه جوان برد که سی میشه. اما این که واقعا بیاد اندازه گیری بکنه به حساب بکنه اما حاصل بکنه این کار علمی طبعا این کار علمی رو نمیشه به دست دقیقه متخصص دار اصلا یک کسی احلی نجوم و تلسمات این بله من با و سه رو جن نوندن برای شما خوبه اون دکتر یک کرا من اینجور معنی نکن من از رای جهت تلسمات از رای علمی احساب کردن یک کسی بعض از رای مثلا از رای و جهر و سرلا این که بگم تأثیر دره این اینه این وقتی به ظاهر من بره اصلا به ظاهر به جه خودش محفوظه دونیمان ها بخور به جه خودش محفوظه تفسیرهای متعقدن به جه خودش محفوظه و اصطلاحا اینطور میگن میگن شما نباید کلام یک ای رو به دست رشتهی دیگه به تصورات شخصی و به ادراکات شخصی رو خودشون کلام تصورتر تفسیر بکنه این رو باید که اون کسی که متقصد تو همون ر و این تأثیر داره؟ راحتی به مسائلی ظاهر کتاب، نظر و اصولا محل تمرکز که یعنی محل توجه به این آیات هست. بنابراین مطلبی رو که هزار تأثیری ها در اینجا دادن، در واقع شبیه میشه به نظر من، شبیه میشه که در کتب اعترس از هشیه نقل کردن که میشه. من محمل سوق قبل فهمید، سوق قبل جذب نیست. اصل همه همه قرآن صله لام مینه صدر امن مصافات یک سوال ظاهرا اخر كلام علماي اخباری ما هم آخرش به همین جا منتهی میشه حتی در مقام نیست این مسائل قابل ارتنا نیست در همه این مقام معرفت قرآنی تمسک به تواضر کتاب اصلا جلد کتاب برای همین جهته البته این هست که ما در عده ای موارد این هست که از اخذ رو ندارن اونم آنها در احکام نباشه مثل خالد عبی ها آزم در احکام باشه و این راهش این نیست که به خاطر این که مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا آیه برماهب ها پیدا میکنه کل قران را از خودریت اندازی. این راه درستی نیست تازه همون موارد قطعا باید عرفی باشه همون موارد قطعا باید عرفی باشه به الله خب لدارش باید قابل قبول نیست فصل منباب مثال اگر در آیت فکرونه ها و تیمون که ظاهرش امره هم رو از بر وجود میکنن کنن خب میگن مشروع سروا بر می دن خب این نقطه فاضریشون در قبل از اسلام قربانی رو نی می خوردن می این سر می بردن می داختن بلکه می سوزن دن من عرض کردم کلمه مکه در اصل نیزم باقت کجایی ایرانی هیست ایرانی لغت ایرانی هیست باقت نیزم به معنای سوزنجایی که چیز رو می سوزنن یعنی جایی که مثل آتش ایرانی، چون قربانی می آدم برای مکه بعد بود سندالی که می کشن این در اونجا می سوزننن خورده نمی شد آمد سکولومن به اطلاح اصولی همه در مقام حضره و همه در مقام حضر می اصلادوشون کنه این مشکل درست کنی اینکه کنی کنی ظاهر آیه کنی کنی کنی کنی کنی کنی حتی مسئله یه زن و اینکه زن از خصوص زن این این هم هم اصولاً در یه تفکه نسبتا راه جغل در از اسلام زن خودش جز ترکه بود نه جزو برکه. یعنی وقتی شرس میبود زنش رو هم عرص میداده بسید که اموال جابه شد، خود زن جزو ترکه بود از به پسر بزرگتر از زن به عرص میداده حالا حالایه ح این آی... دو تا ممکن ازش بگیم آیات وارکی که در قصر زنه مثل همون عمر مقام سرحان حضره متعاق به این که ادعا بکنیم یه قرآن خارجی هم بوده اینی که در کتابی که منصوب بوده به امرون مومی در نوشته های ما از این تایی نوشته هست اون کتابی که منصوب به امرون اونجا شروع فرمدن زن عرصیم از زمین عرصیم اگر این عرص نبودن این, این منشه نمیشه که ما خیال مثلا حالا چون میان argument شه مفید در یک از رسائلش کلامی اینا به از یک شیعه بقول خودش و قابل شیعه ناسبی علی شیعه ناسبی میگه روزی و از ذکیام خون این خلاف ظاهر کتاب چهلالم شیعه گفتن چروق واه خیلی حمله شدیدی میکنه به من مشکلی نداره فقط یه مورد دو مورد هست گفتیم مثلا ببین که تخصیص شده به سنت رسول الله شده مشهور در تلماتی روا در حتی سنت نمیده درست برخواه این مشکلی تولید نمی اینطور نیست این کار منشعه اشکال بشه ولی داره به نظر ما وجود چند مورد که یا تخصیص کرده یا تقرید کرده یا ارخان داشت یا اجمال داشته این منشعه رفعیت از زواهر کتاب نمیشه به عکس این تصور یک نکته دیگری ما روش بیشتر تحکیل بکنیم اونی که اجمالاً در فهر شیعه اجمالاً تمثل که به کتاب نسبه زیاد میزید رو با قبول بکنیم مثلا ما مکتب قوم رو که تقریبا ندارن تمثل خیلی کم مرحب کردیم مکتب قوم اینقدر متشدده که در احکام حتی الفاظ رو بارست هم عرض نمیکنن شهر در اول مخصوص میگه. یه اصحاب ما اینقدر مقیده به محل محصوص بودن مثل گفت که یک واقعیت علیک نمی کنم واجبان علیک تغییر هم نمی دادن فرضان علیک لازمان علیک ایشون تا ترجمه هم نمی کنه تغییر نمی دادن. این هست یک مدتی در این بوده اینو باید قبول بکنیم این, این بوده که یه تنسل شدید لحظی به روایات شده همین هم منشع شده که یک مقدار مثلا تمثقات تمثق باعیات و استدلال باعیات مبارکی کم ترسده البته ما در بغضادی هایی میبینیم و مثلا همین ظاهر آیه مبارکی ای که هم در با مقردیس علیه هم جناحان هم تحصیلونه سلا این رو خب یک روایت نرد شده که مراد سلاح و مسافره ظاهر آیه هم و خوفه ظاهر آیه به سلاح خب مثلا میبینیم مرموم شیف کولینی و مرموم سید مرتزا این آیه رو تو سات خوب باوردن مثلا تو سات موساقر ندن این یک مقدار اختلافی در این جهت بین اصحاب ما بوده و حق در این مقال انصافن با بخدادی هاست یعنی انصافاً باید قبول بکنیم که آزنگومی ها کمتر تمثل به زباهره کتاب کردن بخدادی ها از این جهت و باز هم من حیصل مجموع باز هم من حیصل مجموع که به زبان کتاب کمه انصافش یعنی وجود به قرآن حالاً میخواد تحسه فرد یعنی ولو ممکن است یک حکم رو از قرآن استیاد بکنن یا به مناسبات رو موضوع یا جاست متعدده الان به هر حال این مقلب یه مقداری از این اشکال وارد هست که کمه و شاید هم همین من به که یکی از مناشه ای که مرحوم الله محمد امین استرابادی مثلا بگه زباه کتاب پیش ما وجود نیست. شاید هم حالا من به ذهنم خطور بکنیم تا مصطفه هم شاید هم این سری اینه که مرحوم های شیخ خور عاملی در کتاب و وسائل در احبابش آیاس رو نایورده. شاید چون ایکی از اشکالات آید بود به مرحوم شیخ خور همینه که در اول عباب آیات مناسب رو نیبوده به لذا اگر دفتر در جامعال احادیث اول آیاز رویشون میاره البته این کار احتمالاً چا نظر خاص مردم شهور بوده بلان مجلسی رحمه الله در اول هر باقی اول آیاز رو میاره بلکه بعدشن تو این مقدار معتنابی تفسیر میاره اصلا این تفسیر به زیاد در میکنه از تفاثیر آمنه تشاف دیگران یه مقداری مؤتنابه یه هم تفسیرشون میاره دیگه آیه بروجه این کار نمیکنه، نمی همون آیات رو بردن. اما این که از تخواسیر در غیل آیات چی که بیارن نه و حال احتمالا من نسبتی می کنم بزن به شکره چون نظر ایشانتون عدم و حجیز کتاب بوده پیشون اصولا آیات رو در وساقه نقل نکردن رضوان الله تعالی به نظر من به جای این بحث که واقعا تا خیلی هم شد خوب بود که اصحاب ما راجی به خود آیات قرآن در مدارس قرآنی بیشتر کار می‌شد ما در مجموعه رواد دبلد راجی به آیات کتاب و سایات کتاب و نزول اینها داریم کمترم اینها که شده بعضی هم که هم می که مربوط به به اصطلاح علوم الان اصطلاحا در دنیای عرب اینها به مجموعه علوم القرآن و انصافا این کار توی ماها کم شده اعتنال به قرآن و علوم و قرآن یا به اسطلاح نوزه قرآن شناسی و قرآن پشجوری این نصبتا توی کارهای ما کم ای کاش این اعتنا رو این جهت بیشتر می شود از کردم ما حتی بعض از آیاتی داریم که به حساب ظاهر هم در ریلش روایت نداریم از اون ادعای نصد درش اهل سنت کردن ماها خیلی وااضر نیست یکی از شا داره اون نه هم کردن که گفتیشون خب ما ننشم که قبول نداریم باید به آیه تکوا بیم از اون رو خود ایجال پک نداه اون آیه هست ایه که کسانی که ف میکنن رو نوان مص ح غیر تا یک سال زن‌های اینها تو خونه هم بیرون رم ازحقدارن از خونه استفاده کنیم. این یک سال الان مشغور ایام ت سازه درغافات محل کلام اگر زنده حق سخن داره ایام در صبح یا من و در به وفات با اینه که ربو نمی کنه علایق ارتباطام بنابراین ظاهر این آیه مبارکه که مثلا این چه گزاره اقدام کنه که من بیشون گفتم ما بله معناش که ربو ندارید هر قائل بشیم به ظاهر آیه والله که که در آیه هست بو شما خودتون در منها نه بله پسکار که این که لاقل مستحبه که زن تا مدتی یک سال در خانه شوهر بمانه مگانی که ازاهای که است. این ظاهر آیا نواره و از اجایب اینه که پس از آر بوشیم را اهل از بیرد افرسانت ازاهای کردن ازاهای نصر الان حالا آره من وارد جزئیات میشم که ها نیست فقط ارزم کنم که انصافش میکرد که علمانی ما و آیات قرآن مخصوصا در تحکید رسول الله روی حضرت قرآن بیشت این مقداری که الان هست کار میشد و به اصلاح به جهات مختلفی آیات مختلف حالا آیات الافقام هست آیات افادت هست آیات تاریخ هست آیات افلاق هست و حیر زالت تمام اینها رو به خصوصیت های خودش دقت کردن و بررسیل کردن این به اندرمای کارش باقلاله ضروری بود که این کار متاسفانه نشده در ناشوی با آیات الاحکام اونی که الان مشهوره در کتب ما 500 آیه از که در این ورم 500 رو افتداعاً در کتاب عشر سنت آمده در کتب اصول عشر سنت حدود 500 آیه نوشن هست لکه اینطور بیدیسا به خورده اینه حالا من اون بحثی دیگه می خواهد و اده از علمای ما امثال حلاغیلی شیدستانی که عبارت اونها رو دیدن همون عدد رو ورداشتن از اونها نعمل کردن نیست این در خلاف بحث اشاره کردن یک مشکل دیگه که ما از این طرف برای ما هست از اون طرف برای اهل سنت هست بیش از اندازه به هم حوصل کردن یعنی آیاتی با مفرح کردن که اثبات اون مطالبون آیات محل اشکاله روشن نیست همه قاعده لاحرم شد و همه قاعده محلو لاحرم شد خب مشبور محلو ماجه علیه کن اولا در بلسان و علمای ما میخوندی ماجه میخوندن قابل مشاهده ما ماجه علیه کن مجعول نیستی اولا ما دار ماجه در قرآن همه شه ماجه علیه دو مورده از ماجه ماجه علیه کن که دیر محرم این رو علمان احسان از بیانوانه قادر کلی در فقر یعنی قادر فقریه هم نام میبرن به کار موردن هر حکمی که به حد در حرج برسته برداشته میشه اگر ما باشیم او ظاهرهای اونو که این نیست مجاله بکنم فتی یعنی مجموعه دین حرجی نیز ظاهرهای یه چیزه اون استنتاج فقری چیزی دیگر اون وقت اضافه بکنیم به این مطلب. اگر از نفری هم بخواید اثبات هم بکنید، بگه اون مشکل بیشتر میشه در اون روایت عبدالعلا مولا آلسام سام اینطوره، میگه افتادم به در این انگوش هم به اصلاح فرحبت ازرخی که واقعی تو همون زفت هم این انگوش دست بوده یا که بوده کدوم یکیش حاصل دیگه بعد میگه مراره مراره دارویه تر چی بوده وانوان از دقونی است. زهره حیوان میگرسن خود زهره انسان مراره مراره می میگنی مره به اسطلاح مراره رو داری روزی رو که از سخرا درستی یعنی که از کسی سخرا میگرسن بعد به حضرت میگم چه کار کنم حضرت گه حاضر و اشباهو یه عرفت کتاب الله صح علم مراره قال الله تعالی ما جهده روی دین من حرج ام به همین آیین ای؟ نحوه تمثق اهلسانت هم هست متاسفانه الان ما بی این لسان بی این تعبیر در این حد زاهرم تو اونجایی که رو فقط هم این آیه یکی دو موردگر این آیه در احباه آمده اما بی این لسان نه حالا خصوصی ها دشین شده تو برصلاح خب این البته باسته اینه که اگر انگشت دست باشه این وزیفش قصد بوده بعد از اینکه این جبیره به اصطلاح یا این مرار گزاشه اصطلاح وارد از قصر تبدیل میشه به مرسه. خوب دقت می‌کنید؟ قصر درآشه میشه تبدیل میشه به مرسه. مشکل فنی اینه که ما جهل علی کوم که دین من کارش نفیه میگه شما نشود لازمیه که انگوش بشه. این انگوش مشکل پیدا کرد که اثر زخم پیدا کرده اما اینکه بیا محصف بکن این از ماجه علاقه کنفردی میکنه هر این در نمیان وظیفه، تبدیل وظیفه. یک دفعه میگیم آه این لسانش نفیه شما خسل رو برمیزده اگر مراد انگوش انگوشت ها باشه که احتمال من الان نمیدونم واقعا تو لرگوارده چی نیست اون وزیفش محصف بوده انگوش ها وزیفه جزبه خیشیه به خلاف سرمی ها مصر بوده این هم کلام مباشرت بوده به خاطر جبیره مباشرت برداشته میشه یعنی <تصفيق> طبق وائده ما علاله کنفید بین من خرش باید اینطور طور بگیم رو پاک نکن اما روی جبیره مصر کن مهم در این حدیث اینه که امام سادس الان این طبیل نرد می فرمان حضا و عشباهو یو من کتاب الله حضا و عشباهو خیلی عشبه یعنی این فهم این مطلب که یه چیز برداشته بشه یه چیز برداشته بشه از همین آیه گرامت حضا و عشباهو یو من کتاب الله با اینکه که ما برطب ظاهر از آیات روات زیاده از هاو ما اصولیان تمسوش کردن که برای تمثلی بزنهایی که من نخوندن کن هست در کلمات هست بیگه بیگه در, در اینجا این مشکلی که هست اگر ما باشیم و آیه مبارکه این قاعده لاحره که احل سنت گفتن در نمیان قاعده لاحره به معنای که هر حکمی که منتهی شد به هره اون حکم برداشته باشه بلکه تو بالاتر تر یک چی در دجاشت برداشته بشه. اونی که الان اشکال معروف درم ما که سر این شرط. علما یه قواشی متأخر بر بالا هرج برداشتن. لا هر از چه لا چیزی به جو قرار بده. لا هر میتونه بر بره. با این که در این موارد ما هاضا او یقرع میشه نه عادی این نمیشه میشه کتاب. این شعر اگر مال دست باشه که اشکالش بیشتره اگر مال پا باشه اشکالش کمتره این وقت داره قارده اگر مال دست باشه بگه قفص واجب نیست اینکه کماکان خب این ایک مطلب ایست که احسان نظرش هم از کردن این صاحبا اگر ما باشیم قارده ما جعله کنفردین من هر این بین گفتیم این مجموعه این هر این هر این نیست در سه اصلاف کل بلا نسنده و سا نیست. ما که ما کنم من واضح این بخشم از های زیادی هم گفتند که اهل سنت کتاب بیش از اون اندازه به نظر ما بهترین راه به این, این مطقر حد وسط اولا قرآن عنوان مرجع اصلی در اسلام باقبول بشه من سال باقرارم دادم این تربیر یا روز روز روز روز روز روز روز روز روز روز روز روز روز انجام جونگه که هر کشوری برای خودش یه قانون اساسی که ریشه اساسی هروند برقرار بده بعد بقیه خودونو قانون علنی و عمومی قانون مناقصه کذا قوانین جزئی و جداگانه و خاصی این کنن یکی یکی رو در برنامه قرار بدن اکثر اون که ما الان در قرآن استفاده می‌کنیم قرآن شدید قانون اساسی اما نه در چه در عقاید در اخلاق در همه چیز این هنوز هم که 1400 سال از بشر بودشه نه توانیتن یه چیزیه بشر به فکرش نرسیده که ما یه یک کامل احساسی در همه جهات زندگی بنیمیسیم هم دنیا هم آخرت هم برزخت مثلا آیاتی که متصدیه برزخت کمه دنیا آخرت میاخده همون برزخت همه بیشترین قسمت دهچه برزخت ما در معارضی دینی از روایات داریم نه از آیات داریم علاقه حاله این مساده و این خصوصیات رو بررسی کردن اینها جزوه ضروری کار حوزه های ماست و انصافت در این جهت کم شده اینو رو با قبول بکنیم و بگیم دید اگر ما به قرآن نگاه بکنیم و عکس اخباری ها در, در جهت بر اقتماع با در قرآن باشه. اما همینطور که الان اشاره کردم چون روح قرآن تقریبا روح آمن اصاسید معلوم نیست به توانیم همه جا به ظاهر قرآن به لحاظ بحث های اصولی تمسخ بکنیم اگر اخواری این بحث, بحث رو بفرمی کنند رو ما صابقا هم عرض کردیم بعضی از آیات کتاب اصلا رفتی به مقام تشریع ندارن به واقع مثلا ما رفت بزن نام لده عبید بسر شیدن بعضی های آیه تمسخ کردن که ارتزن و مردی اینجا خب چه رفت شده ما ر در مقام ملاقات هم نیست چقدر که در مقام تشوی باشه. این امور واقعی است نیست بعضی از آیا در مقام ملاقات هم ملاقات شما ما به اصطلاح همون امور تکی است که زیر بنای تشریره فرق بین اول دوم رو اینج گذاشتیم، امور تکرینی رکتی به تشروییل نداره میید واقعییت رو میگه. اما ملاقات، میاد یک واقعیت رو میگه اما واقعیتی که مخواید در شریعت مقدسه زیر بناست وقت ما ارز کردیم ملاکاتی که مدر به در اسلام مقام داریم سه مرحله هستی یه توضیحی که داریم یکی خود ملاکات واقعی یکی حب و برز یکی هم اراز و کراه همین ها هم در قرآن هست داریم مثل این ار رجال ار رامون ار اندسا که ظاهر از دهان را و به ما انفه بود به ما فضلات این به ما الله عمر ملاق یه عمر بابید یعنی گاهی اوات ملاقی میاد مرحله دوم هم آیات فراوانی دارید که حب و بخص اینالله یهب با طبابی یهب با این طوابین و یوهب بل این طوابین و متح... متحرینی که در اینجا اینالله الله بل توابین و یوهب بل مستحرین این زیر و بره احسان تهارف ها و از همین جا هم شون مرحله ملاقاته میتوانه این مخلوم معروفی در روایات هست که مکان علیه شاهد دونه کتاب الله یعنی اگر آمد که در خیلی از ها شما تعمم بکنی این موافقه با کتابه این اون موردش در کتاب نیامده چرا؟ چون یوهی بل متفقیده این که آمده در زیل آیه تعمم داره یوید دو لاحبه کموره ارس یوید دو يو، یو تحرم کن که خود تعمم هم توهور در دازه شده در تحرم پس اگر ما دیدیم در بعض از ها مثلا که به حساب ظاهر نمیاد مثلا یه روایت داره که البته موصل فعلا در محاسل برقی که اگر شخص شب بخواد به خواب حضور نذاره مثلا در متکاملون با هم متکا چون به ساده اون متکای بخوابیده بکنه یعنی خاص این روایت رو میتونیم بگیم این شاهده کتاب داره شاهده دین روشن شد نه اینکه در قرآن ذکر شده یعنی این مقدار است تطهبور مطلوب حتی در این حالات اتبایی که این جایه بزونیست پس یک مقدار از آیات و یوریدو بکومولیوس ولا یوریدو آیات مواله که چه حب و به علیه کومولیومان چی؟ یوریدو الله به سبب آیات همین یوریدو بکومولیوس این یوریدو بکومولیوس اراده تکلیمی اداهی هم هست اراده تشریعی هم هست که خداوند زیر بنا قرار میده برای شریعت مقدس. اون وقت در اینجا صحبت اینه آیاتی که قبیل قسم اول هستن یعنی امور تکریمی هستن این که اصلا قابل تمثب در نیست آیاتی که اصلش دوم هستند هستن چون ملاقات چون قبل از مقام تشریع ما هم میتونیم با اونها تشریع بکنیم اصولا نه از کردیم خو اون چیزی جنبه قانونی فیلا میکنه که ما به حساب مرحله جعل برسیم این بحثو من سابقا هم در اصول چند بار مطرح کردم بحث اصولی است لطیفی هم هست ما اگر اعتراض ملاک کردیم بالاتر که فهمیدیم به مرحله جعل نرسید آیا اعتراض ملاک کافی است برای حکم به استهباب سوال و صحنه روايت معروف لولا ان اشق على امتي لاخرصل عشاء رسول الله این لولا ان اشق که ان ما میشه ملاک بوده برای كارت لكن محقق مامه لولا ان اشق على امتي لذا ايديان اهل سنت به خصوص فتوا دادن تمام نمازها اول وقتش استحباب داره الا عشاء یستحب و تأخیر آیه رسول صلی اللہ تمام نمازها صبح و زهر و عصر و مغرب اول وقتش استحباب داره اللہ اشان خب این طبعا بحثه که آیا ما از جایی که ملاکات رو در میاریم آیا میتوانیم اصفات احبان بکنیم انصافش مشکله این مثل اون اتبعون فعبیله مثلا ما بگیرم این الله یه حب و تبابین و یه حب و اگر کچه اصفات بشه بهتر از نیگه مثلا خاط باشه. استحباب اصفات تو از این آیه در جنویم. مثلا انصافش خیلی مشکله. این ملاقات برای شاهده کتاب بودن. ما خانه علیه شاردان و شاردان من این کتاب الله. مثلا بگیم در اینجا. بگیم یویدو لازه کمولیوس. پس ما هر کاری که آسانه انجام بدیم. این تعاویل توی مقام انشاء نیست. این تعابیر تو مقام ملاکاته من عرض کردم مقام انشاء داریم سه مرحلهم قبل از انشاء داریم که مبادی حکمشناسی وجودشین یکی ملاکاته یکی حب و بغض و گراد و گراه اینا مقام انشاء نیست ما آیاتی داریم که ناظر ببینیم مقامات هم. خب ما بگیم که ما بگیم زوابری کتاب وجدی چون تحلیل علمی می‌بینیم از آیات چرا این راه رو بریم خداونده مطال روی جهات معینی در بعضی از مقامات به جای تعبیر به خود گفت این تعبیری که ناظره به به کار برده امروزه شاید ما مثلا در قوانه اساسی اینجور نداشت بکنیم یه حب با تباویم یو حب بلندترین این یک تعبیر خاص قرآنی یعنی قرآن در این حالی که میخواد احکام رو بیان بکنه یا خصوصیات تعبیری هم داره که یکی از اینه. میاد مقام غب و بغض رو میگه آیا مقام غب و کافی کافیست که ما انتباه بدیم به موارد مثلا بگیم اصفاد بهتره یا مثلا اگر میخوایم ساختمان سازی بکنیم مثلا آجور نما بذاریم بهتر از این که آجور آبی بکنیم اینجور چیزا رو نمیشه انصافاً اصفاد کرد این رو برای شاهد خوبه برای که بگیم مثلاً به مثال، اون رضایتی که میگه بلو با, بلو با متکات عمون بکن علیه شاه من کتاب الله چرا سن اینالله یو حب بل مختلفی اینه میلنه برد تخوری در جزایی باست دار شکل تخور به خودشی رفته یه قد پس این قسم دومه از آیات قسم سوم از آیات آیاتیست که به تعدیر ما جمعه شعارگونه داره از سره چیزایی که جمعه بلا این منزی چیزا را خواستی هلان نه خودم بیزن اونا که جنبه یه داره اون هم تمساکش به نظر ما مشکله همین آیه معروف هرمه علیکم الخوائز اولا قدیم هرمه علیکم شما در قرآن میست اونی که در قرآن هست یه هرمه علیکم الخوائز علیکم نیست و علیکم al این النبی الامی اللذی یجیزونه هم محطوبا انده هم یوهل یا با آنهم اسبهم ول اخلاقالذی کان یوهل له مود تجیباد و یوهر ما علیم ال خواز. ادیبه عموم آیات هر سکرند برای که مطلقا خواز نکردم. من جمله گفتم انسان خب است مثلا آبدهن رو خودش رو از بیرون دوباره بخورد، هر مثلا آب دهنش رو دستش بد باشد بخورد. چون این آب است ولی گفته تو دهان که شل نبود. بیرون کی میاد جز خواز میشه. یک طرفات میتواند. این جز میشه. توی اروه هم داریم این بحثا در باب سوم که اگر که افتار کرد با آب دهان و خود این کفاره یک هم چون تحقیل به خباره انصاف قضی رو با قطع نظر از جا داره خباره آب دهان خود انسان برای انصان دوز خباره ترسینا با یا با, با قطع نظر از این بحث اصولا این آیه مبارک در مبارکه در مبارکه تشریح نیست به نظر ما اصلا معنا نداره که خدا من بیاد تشریح این شریعت مقدسه تو تورات بیاره و نبی الامنی هسته یکی دونه هسته اون مطبعه تو تورا اصلا این تو مقام تشریح نیست این برنو توجهی مسته یا که مثل احضالله بیدیم اون اوفو بلو خود خطاب به مؤمنینه این آیه نظر به تورایت من میدونم نمیخواد تو توراث یه دارم مقام جلسه کدی اخباری داره نه این یعنی این پیغمبری که میاد در این شریعت خوابس خراب میکنه آه. حالا آخوی ما عتادن خوابس خوابس افعاله چون خبر در قرآن دو به کار برده که اینجایی که درباره قوم دود اونجا هم به خوابس قضیه ذاتی کار تمامه خوابس حالا فرض گفته جمله مطلقه ما یستقره حال انسان برای اون بحث دیگر، اما به نظر ما اصلا آیه نازره به مقام چه هرمیست بیشتر جنبه سیمای پیغمبر رو در تورا توصیف میکنه که پیغمبری که خواهد آمند این طوره در این شریعت حلال مثلا فرصلا اهل یهود شهوم بر اونها حرام شده باید که شهوم جدود قیبات این ناظره به اینه که این پیغمبری که برد خواهد آمند در این سریعت مقدسه قیبات رو حلال خ بلایی شهه موادثه خواص و احرام و لزوما ممکن از خواص شامل خواص افعال هم بشه. نه خصوص اونی که انسان بذیشونه. هر چی خمیس باشه. آیات به احکام اون وقت آیاتی که ناضر و مقام جهد باشند چیزی در نظر اون یا نذیر نز... یا نذیران یا ایای نبی لزوما شتا دهوید ادا تعلق اون لزوما تعلق اون به نل... ای ایه هستن. بیشتر از صورت اون چه داره؟ کسی ندارم و همین نیست این استصینه چارچوبای کلیه شبیه ما میگیم شعار میگن استقلال آزادی هیچ تا موردی این ناظر به این تفسیر کلیه مکتب اسلامی که قائادات این طوره بزر... تو اینکه در ادله بطور هر خبریه دیگه با خبره و, و خبر جن خدا ظاهرش که چیه حس برای این قسم آیات هستند الان اومدیم تو کتب اصول تو دفتر به تامل کردیم هم به نیست اما به ذهن ما یعنی به جای اون افراد اخباری ها میگم ولی ما آیات رو تحویل میکنیم بهتره اونطوری که علی خلیلی به هیچ تناسب نكنی یا فلهی به همه قرآن طبعه این به نظر من بهتر بود پس این سنیخ آیات هم انصافن به ذهن رنده بیدن که تمثل که به عموم و اطلاق اونها به تعبیر مرموم شیخ قرآن عاملی احکام و نظریه اینا دارای عموم یا اطلاق به نظر ما نیستند. این هم اسم دوم ثومی از است که در قرآن هست که جنبه های ترسیم کلی داره بلاترین و بلاترزن و, بلا و انتمول ا اینا جنبه های کلی داره نه اینکه که یک بی باشه جزئیات شدیگه از رو آها جزئیاتشو. این رو باید رسول الله که میاد بگه تیران و نظام اگر بکنید مثلا نمی بینیم این نه این که به خاطر این که عموما اطلاقات کتاب نیست رجته این تو مقام اطلاق نیست اصولاً. ی봐 تام فغان دستش تا آخرش همین سمو بکنه دیگه علیه